Awe Awe Awe Awe وانی فارسی. بنای کردگاری دلوانو تا کن. عزیزانو حاوریانی برنامه وانی فارسی. سروتن لده کینو اواچی تندرستیو ژیان کی بو هم ولایک تاند خوازی محمد دیو سری شقامی فردوسی بدات او لګل ا رزوی رضوی بري وبري کمپانی یک قراری چوپه کوت بلام درنگ بو محمد ټلیفون بو اجانسی تاکسی ټلیفون دکاتو داوی تاکسی یک دکات اگر حظ دکرم ځان محمد تو چرو چر و اویک آیا او لكاتي خود دقت یا نه لگلمان بن لا برنامهی امردا سرتا سرندی وشن و اگر بتانید دتوانند و شکان للا روزتان بخیر روزتان بخیر روز باش تاکسی تاکسی تاکسی من می خواهم. من می خواهم شما می روید شما می روید دهن خیابان خیابان شقم خیابان فردوسی خیابان فردوسی، شقامی فردوسی، مشترک، مشترک، ابونه، مشترک 125، مشترک 125، ابونی 125، ده، ده، ده، دقیقه، دقیقه، دقیقه، خلاق. بعد بعد دواتر تاکسی می آید تاکسی می آید تاکسی دیت خیلی خیلی زور من عجله دارم من عجله دارم من پلمه دیر شده است دیر شده است درنگ بو زود زود، زو، نزدیک، نزدیک، نزیک، نزدیک است، نزدیک است، نزیک، باشد، باشد، باشد، خدا حافظ، خدا حافظ، خواه حافظ، خدا نگهدار، خدا نگهدار، خوات لقل، چرا؟ چرا بچی چرا استاده ای چرا ایستاده ای برو استavi چیزی شده است چیزی شده است شتکبوا ماشین ماشین اتومبیل پنچر پنچر پنچر الان الان استا لاستیک لاستیک تایر من عوض میکنم من عوض میکنم دیگورم وقت وقت وقت من ندارم من ندارم نیمه دیگر دیگر ایتر. با با ب با. باشد باشد بش برای شما برای شما با ایوا. من میگیرم. من میگیرم دگرم ببخشید ببخشید ببورین پنچر شد پنچر شد پنچر بود خودم خودم خم من دیر کردم من دیر کردم من درنگ ما. خواهش میکنم خواهش میکنم تکا ادکم استا پی کے و جوید گرین لا او توجی نیوان محمدو فرمانبری اجنسی ٹیکسی کا الو سلام آقا روزتان بخیر من یک تاکسی میخواهم من یک تاکسی میخواهم سلام کجا میروید سلام کجا میروید به خیابان فردوسی به خیابان فردوسی شما مشترک ما هستید شما مشترک ما هستید بله، من مشترک سادو هستم. بله، من مشترک سادو هستم. ده دقیقه بعد تاکسی می آید. ده دقیقه بعد تاکسی می آید. اما من خیلی عجله دارم. اما من خیلی عجله دارم. دیر شده است. دیر شده است. تاکسی زود می آید. تاکسی زود می آید. خیابان فردوسی نزدیک است. خیابان فردوسی نزدیک است باشد خدا حافظ باشد خدا حافظ خدا نگهدار خدا نگهدار عزیزان دوباره به رجو دگرین و تویش بلن به ورگیرانی کردیوه الو، سلام آقا، روزتون بخیر الو، سلام آقا، روز باش من یک تاکسی میخواهم من تاکسی کم دوید سلام، کجا میرارید؟ سلام، با چی؟ به خیابان فردوسی با شقمی فردوسی شما مشترک ما هستید؟ جنابت عبونه ایمیت بله من مشترک صد بیست و هستم بله من ابونه جمعه صد و بیست و پنجم ده دقیقه بعد تاکسی می آید ده دقیقه دیکه تاکسی که دیت اما من خیلی عجله دارم دیر شده بالا من پلم زوره درنگ بود تاکسی زود می آید تاکسی که زودیت خیابان فردوسی نزدیک هست شقامی فردوسی نزیکه باشد خدا حافظ باشد خوا حافظ خدا نگهدار خواد لگل چند خوله کې یو تاکسي محمد خراس واری تاکسي دی بیت او نګران نه ک نه ک درنګ بغات حزناک دې کم چاپې کوتنی خوې لګل بري و برکه درنګ بغات سيري ساعت کي اکات هشت چند دقیقې وخت ماوه کالا پرش و فيرکه لا كنار شقامکه راي ديګري يستعج جويدا قليلا و تواجي نيوان محمدو شوفيري تاكسيكا چرا استادی؟ چرا ایستادی؟ چیزی شده است؟ چیزی شده است؟ فکر میکنم ماشین پنچر شده است. فکر می‌کنم ماشین پنچر شده است. چی؟ پنچر؟ اما من خیلی عجله دارم. چی؟ پنچر؟ اما من خیلی عجله دارم. بله. ماشین پنچر است. بله. ماشین پنچر است. الان لاستیک را عوض می‌کنم. الان لاستیک را عوض می‌کنم. اما من وقت ندارم. اما من وقت ندارم. با یک تاکسی دیگر می‌روم. با یک تاکسی دیگر می‌روم. باشد. من برای شما یک تاکسی می‌گیرم. باشد. من برای شما یک تاکسی می‌گیرم. ببخشید که ماشین پنچر شد. ببخشید که ماشین پنچر شد. نه نه خواهش می‌کنم. من خودم دیر کردم. نه نه خواهش می‌کنم. من خودم دیر کردم. چرا ایستادی؟ چیزی شده؟ برا استاوی شتگ قوموه؟ فکر میکنم ماشین پنچر شده است پنوایه ماشینه که پنچره؟ چی؟ پنچر؟ اما من خیلی عجله دارم چی؟ پنچره؟ بله من زور بپلم بله ماشین پنچر است الان لاستیک را عوض میکنم بله، ماشین که پنچره، اصلا تایره که گرم اما من وقت ندارم بلن من وقتم نیه با یک تاکسی دیگر می رویم لگر تاکسی که دیگر دارم باشد، من برای شما یک تاکسی می گیرم باشه من تاکسی کت بوده گرم ببخشید که ماشین پنچر شد ببوره که آتوموبیله که پنچر بود نا نه, نه خواهش میکنم من خودم دیر کردم نه نا تکادکم من با بوخوم درنگم کردو شوفیله کو محمد لا کنار شقامه کارا دوسنو دوای چند خولک یک محمد سواری <سوطع> تاکسی دی کرده بیت شوفیله خریکی گورینی تیار کرده تو محمدی شکاتی خويده د غاته شقامی فردوسی আজিان لیردا د گینه کوتایی برنامه امروی وانی فارسی او تا به گشتوی کی دی که هم لا یکتن به